دلا به سوز که سوز تو کار ها بکند نیازمیم شبی دفع صد بلا بکند دلا به سوز که سوز تو کار ها بکند نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند عطا به یار پری چهره عاشقان بکش که یک کرشم تلافی یه صد جفا بکند ز ملک تا ملکوتش هجاب بردارند هران که خدمت جام جهان نما بکند طبیب عشق مسیحا است و مشفق لی چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند تو با خدای خودنداز کار و دل خوشدار دار که رحمگر نکند مدعی خدا بکند ز وقت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند به سوخت حافظ و بوی به زلف یار نبورد مگر دلالت این دولتش سبا بکند